عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ذکر سلواتی داشته باشیم تقدیم بر محمد و آل محمد اللهم الله صل اللهم الله الله محمد و آل محمد حدیث چهارم کشی هستیم جلسه قبل ما به سند حدیث پرداختیم و سند رو به صورت شجری من برای شما نوشتم البته امروز هم لازم داریم اجازه بدید امروز هم دوباره باید اینو رو بنویسیم الله. پس من حدیث رو میارم متن حدیث رو بله حدیث این بود همدویح و ابراهیم ابن نسیر قال آهده سنا محمد ابن اسمایل و قال آهده علی ابن حبیب المدائنی و ان علی ابن سویدن نسا نسائی یا سایی چه گفتیم سایی هست اجازه بدید اینو من بنمیسم دوباره امروز یه مقدار کار ما فنی تر از جلسی قبل هست شانده. امام امام تازم علیه السلام بعد علی ابن سوید سایی این سایی رو چه مطمئن شدیم که سایی نه سایی نیست نه نجاشی تصدیق کردم گفت منتظر به شهر سایه هست بیاییتون باشه نزدیک مدینه بوده من نش بودن خیلی شهر بعد علی بن سوید این حدیث روی چتاب رو داده به آقای علی بن حبیب مدائنی او هم داده به محمد ابن اسماعیل رازی او هم به دو فرزند نسج همدوه و ابراهیم ابن نسیر این دو نفر کششی هستند هم. و ابراهیم چشی هستند و از این دو نفر هم رسیده به آقای کششی خودمون خیلی خوب ما جلسه قبل علی ابن رو تو چتاب های مختلف دیدیم و به قول نرمفسار اینشون سقه و امامی هست مشکلی نیست یکی از منابعی که در مورد علی ابن سوید صحبت کرده بود خود کتاب چشی بود در خود چشی حدیثی که بود ما در مورد خود علی ابن سوید دیدیم یادتونه حدیث شماره 859 بود اجازه بدید اون رو هم بیارم براتون چشی حدیث 859 جلد دو 859 اونو یه بار دیگه میخونم خدمتون امروز با آن دوباره کار داریم بله ببینید فی علیبن صویدن سایی خود چشی هم سایی آورده اینجا حدیث 8259 حدسنی همدوه قال حدسنی حسن ابن موسا ببینید همدوه کرده ولی از شخص دیگری حسن ابن موسا از اسماعیل ابن مهران از محمد ابن منصور خوزایی از علی ابن سوید سایی قال کتب تو اله ابل حسن علیه السلام و هو فلحبس از الهو فیه ان حالهی و فلان در اینجا یه تبیری داشت که ما برای بحثای رجالی نیاز داشتیم اما بعد فا ام نکم رو اون <تصفيق> ام رو اون کلمه ام رو اون جالبه یه لکته جالبی داره اون اینه اون همزه آخرش بستگی به اعرابش پایه همزهش تو کتابت فرق میکنه کلمه اینجا رعایت نکردن اشتباه نوشتن ام رو اون باید پایه همزه رو زم... چیز آورد. واو آورد آره این نکم رو اون الله من آل محمدن به منزلت خاصتن مودتن محب اهل بیت هستی و خدا تو رو در یک منزلت خاصی قرار داده است به ما الهمت من رشد که و نسلت که من امر دین که به فضلهم هم و ردل رد امور الیهم تو از اونایی هستی که امور رو به اونها برمیگردونی صراغ سراغ اون ناچسا نمیری سراغ اون آدمای ب... مخالف اهل بیت نمیری و رضا به ما قالو هرچی اهل بیت میگن تو راضی هستی به اون فی کلام تویلن که و قاله ود و الاسرات رب کفینا من, من رجبت اجابت ته و وال آلم محمد دیگه اینها شاید خیلی از جهت رجالی برای ما تاثیرگذار گذار نباشه بسیار خوب پس ما قبول میکنیم که آقای علی ابن سوید امامی و سیغه هستش تعبیر نجاشی و فهرست یادتون هست حالا چون فاصله افتاد اینا رو ما لازم داریم اجازه بدید من یه بار دیگه بیارم اونا رو در قسمت راوی در قسمت راوی علی ابن سوید ببینید قسمت راوی علی ابن سوید یادتون باشه ایشون در فهرست و فهرس توصی و نجاشی هم مطلب داشتیم در موردش نجاشی رو ببینیم بله علی بن سوید سائی یون صبوی لاقریه تن قریبه تن من المدینه یقال له سایه روان ابن ابوالحسن و قیل انه رواه نبی عبدالله و لیس اعلم من اینو نمیدونم و در مورد وساقت و امامت امامی بودن علی بن سوید چیزی نگفت برگردیم به فهرست توسی هم ببینیم فهرست توسی علی ابن سوید سایی لحو کتابون جلسه قبل هم کردم من که بگیم فهرست توسی و نجاشی چون قول دادن شرط کردن برای شیعیان و راویان شیعه دارن می نویسند چاید پاس امامی بودنش از اینجا در بیاد و هم از مجموعه کلمان حالا یه سوال بپرسم یه مدار تمرین بشه چیزایی که تاالا کار کردیم الان در اون قسمت راوی من تراجم رو بردم خلاصه هلی و رجال ابن داوود هم هست اولا این توضیح بدم نبینم گفتم قبلا یا نه تو نرم افصال چرا اینجوری نوشته؟ رجال برقی ابن داود رجال برقی و ابن داود به هم چه ربطی دانن برقی مال قرن سه ابن داود مال قرن 7 هشت چه رابطی هم دارن؟ ابن ابن نه آه, با هم چاپ شدن. ها با هم چاپ شدن. برداشتن کتاب برقی رو چون حجمش خیلی زیاد نیست با رجال ابن داود با هم چاپ کرده از این جهت بد شده. خدا دام نگاه می‌کنم می‌گه نکنه اسم دیگه برقی ابن داوود بوده یا داوود ابن داود برقی بوده نه اینا نیست. کتابش با هم چاپ شده و از این جهت خیلی خوب نیست. این نهی؟ بله. چی؟ بله، بله خیلی قدیمیه. بر رودیمال هم قوم بوده. بله. بر رود اسم منطقی بوده. البته من از چند نفر پرسیدم اختلاف هست. تو همین دوره برای قوم بوده دیگه خیلی دور نبود. خب از خلاصه هلی و ابن داوود میشه استفاده کرد یا نه؟ بفهمید. خلاصه ابن داود میگم خلاصه ابن داود رجال ابن داود و خلاصه علامه میشه استفاده کرد یا نه حالا دیگه اونا قرنه هشت هم هفت هشت نیست اونها برداشتن از همین منابعی که ما دیدیم برداشته و استفاده کردن نوشتن هم همین کشی رو که الان خوندم براتون اونا همونو نگاه کردن و همینطور کتاب های دیگر نجاشی رو فهرست رو رجال توسی رو اینها رو دیدن در واقع برای ما یه کار تکراریه خیلی شاید به درد ما نخوره ها. یه استفاده خیلی مهم نسخه چناسیه مثلا نگاه می‌کنیم می‌بینیم نسخه چشی که دست علامه بوده همون نسایی نوشته اینو مثلا حالا مثال اون وقتی برای ما یه خورده این چی میشه؟ یه خورده؟ قابل تعمل میشه که نکنه نسایی درسته و ما سایی اشتباهی گفتیم حتی ممکنه نجاشی هم اشتباه کرده سایی گفته و نسبتش هم درست کرده گفته نسبتاً سایه چون اون به نظرم حدسیه حالا شما گفتید حدسی احساس میکنم اون سخن آقای نجاشی که منصوب به سایه هست اون احتمالاً حدسیه چون ما کتابای داریم الانساب. انصاب نه اون انصابی که پدر و پسر رو می نویسه ها اون انصاب کلبی و ابن هزم و اینا رو کار ندارم انصاب یعنی نسبت ها مثلا مدنی مکی حالا بعضی از نسبت ها سخته مثلا کشی کشی رو چرا کشی چشش میگن؟ چششی. چون مربوط به جایز نسبت داده شده به کشکه فلان جاست حالا بعدن سختتر ها شد دیگه سویوتی سویوتی منصوب به کجاست؟ سیوت چیه؟ شهر، گومیه؟ چیه؟ تنتاوی، منشاوی؟ نمیدونم اینا. چجوریه؟ اونها در کتابهای به اسم انصاب نوشته شده. من احساس کنم این عبارت نجاشی هم از کتابهای انصاب گرفته شده که سایی رو نگاه کرد. اونجا دیده سایی. هر چی میگن سایی منصوب به یه است یا است در اطراف مدینه. احساس کنم اون یه مقدار حدسی باشه به حال اینو عرض کردم که یه زاویه‌ای میتونه اینجا برای تأمل باشه که شاید تهش بفهمیم همون نسایی درسته ما نمی‌تونیم اینو متوجه الان برای ما مهم نیست نمیخوایم روش وقت بذاریم و کلاس ما هم برای اینا نیست زاویه بحث برای شما روشن باشه که میتونید تو این موارد کار کنید اگر نیاز شد شبیه این یه وقت ممکنه براتون مهم بشه کار کنید خیلی خوب. داشتیم اینو بررسیم چی, محط... چی میگفتم من؟ آه، ابن داود و علامه چتابشون از جهت ای برای ما میتونه به این صورت به درد بخوره یه فایده دیگه هم داره علامه و ابن داود چتاباشون رو به دو بخش تقسیم کردن بخش اول راویانی که قبول دارن حالا یا سقه میدونن یا منصور رد نشده ما میتونیم از نظر اونها هم معاید بگیریم بگیم همین آقای علی ابن سوید رو که ما قبولش کردیم علامه و ابن داوود هم قبول دارن تو قسمت اول رو بردن. اگر این دوتا در قسمت دوم بیارن ولی ما بگیم نه راوی خوبیه این یه تعالیت میشه معید ما نمیشن اون وقت پس به عنوان معاید هم استفاده میکنیم یه استفاده دیگه هم از ابن داود و علامه میشه کرد اونم قسمت‌هایی از کتابایی هایی که به ما نرسیده کتون کتاب به ما نرسیده رجال قضایری به ما نراره ولی دست اونها بوده لذا از نقل های در علامه و ابن داود میشه به بخش هایی از ابن قضایری رسید اتفاقاً همین کار رو توجه بعضی ها رو جلب کرده از اونجا در آوردن و رجال ابن قضایی رو باستازی کردن این بازسازی کتاب خیلی روش جالبیه شما اینو اگر تا حالا نشدید یه لحظه توضیح بدم این رو اصلا بعضی انقدر خوش رو میاد شغلشون همین میشه میرن دوباله این ببینید مثلا من میخوام کتاب مقتل ابی مخنف رو ببینم چجوریه نگاه میکنم میبینم مقتل عبی مخنف نداریم یه مقتل ابی مخنف تو بازار هست که اون نیست گویا این اصلا یه چیز دیگه هست حالا نمیگم جعل شده یا چی حال اون نیست خب چکا کنیم مقتل ابی مخنف دیگه پرید؟ بعضیان میگن نه تاریخ تبری رو نگاه کن تبری در نقل وقای سال چستو یک هجری کلی از ابی مخنف اصلی واقعی نقل کرده میرا اونا رو استخراج میکنن، جداگانه چاپ میکنن میشه مقتر ابی مخنف واقعی. <تصفح> منتها به واسطه تبری، بله. آیه قربی میونه میکنه. آره، آیه قربی کار, کار کرده. اون ابی مخنف واقعی چون تبری انعکاس داده به ما. اون یکی ابی مخنف معلوم نیست اصلا کی درست شده، چی جعل شده یا چی شده نمیدونم. واقعیش نرسیده دیگه، خیلی کتابا به ما نرسیده، یک همونه. قضایری هم به ما نرسیده شما برو ببین قضایری رو چی نقل کرده اون زمانا تبری نقل کرده خب تبری که نقل نمی کنه. اون که کارش این نیست اما علامه با ابن داوود مثلا نقل کردن شاید چیست هم نقل کرده باشه همینجا همین کار رو کردن لذا شما میتونید این کار رو بکنید و چتاب هایی که بعضا میبینید که خودش به ما نرسیده ولی انعکاسش در چتاب های دیگر هست لذا بعضی ها اصلا یه کارهایی خیلی تر میکنن مثلا شما کتاب و سلات ابن عبی رو داریم الان کتاب و سلات ابن عبی داریم؟ نه نه داری. ابن عبی یکی از اصحاب ما کازم و امام رضا این هاست کتابش هم به ما نرسیده جز اون اصول دیگه که به ما نرسید میشه استخراجش کرد از کتاب‌های کافی مثلا منلای اصور، تحذیبه و سایر کتاب ها میشه سلات رو انتخاب کرد بعد بگیم به احتمال زیاد 70-80 درصد این روایات که در مورد سلات از ابن عبی اومیر ما داریم اینا همون کتاب و ابن عبی اومیر بوده فقط بعد موضوعش یکی باشه یعنی موضوعش سلات باشه اون وقت میشه این کتاب و ابن عبی اومیر با احتمال خطای 20 درصد البته چون ممکنه این یه دونه روایت توی کتاب و نبوده نبوده توی کتاب دیگرش بوده و به همین ترتیب میشه بازسازی کرد کتابهای قدیمی که به ما نرسیده رو یه برسی بود که حالا گفتم خدبتون باشه والد بس خودمون بشیم فهرست توسی و رجال نجاشی در مورد وساقتشی ها تربیر سریحی نداشتن اما از مجموعه این ادله میشه به این رسید که بالاخره ایشون سقه بوده حالا نرم هم دیدید هفته قبل علی ابن سوید رو قشنگ اورده بود و الان من سند علی ابن سوید رو خواهم نظر نرمفصار رو ببینم یادتونه کجا باید برم؟ به کاش میشد <تصال> شما هم نرمفصار رو بیارید همونجا کار کنیم با هم یا کارگاهی بشه یه مقدار گفتیم تو, نرم، تو نرمفصار حدیث های کشی که اعتبار سنجی نشده که وسائل. کار نش، ولی تو وسایل من آدرس شو دادم بله حالا همون جا همون صفحه هم اینها حدیث شماره سی هزار بود این جلسه قبل زدیم اینو رو الان میاد. تا من یخودت قدرتش کمه باید خودت صبر خب علی ابن سوید امامی ثقه امامی سره بودنش از همین چند تا منبعی بود که به دست آوردم خیلی خب راحتش این امروز نمیخواستم برای علی ابن سوید وقت بذاریم دیگه شد آره دیگه جلسه قبل گفتم دیگه چرا چون دو نفر واسطه مجبولم در موردشون چیزی نداریم حالا جلسه قبلم گفتم چیزی نداریم یعنی اینکه اینها یا مورد شناس نبودن یا یه احتمال دیگه هست. جلسه قبل گفتم میتونید بگید این احتمال جای کار داره. ها، اسامیشون تصیف شده است. حالا امروز یه مقدار شاید برای این مسئله بتونیم پاسخ بدیم. حل نمیشه ها ولی میشه یه مقدار توی مورد تعامل کرد. خب، علی ابن حبیب مدائنی، محمد ابن اسماعیل رازی، ها ببینین، هیچ چی نگفته، علی ابن حبیب مدائنی، این که اصلا بدون مهیاره توی خراب شد، دیگه سند خراب شد، یکیشون هم اگر همینجوری مجهول بود، خراب میجرد سند رو، چه برسه به دو نفر اما همدویه و ابراهیم اینا رو میشناسیم، همدویه چه همون؟ حدیث اول داشتیم، امامی سقه بود، ابراهیم هم همینطور امامیه سقه من از این رد میشم دیگه اینها رو بررسی رجالیش رو حالا ابراهیم رو بذارد ببینم اشکال نداره ابراهیم ابن ناصر چشی. من دیگه تونتون این جاها رو هی کار رو میکنم می اینجا رو میزنم چون خیلی کار کردیم میگم شما وارد شدید دیگه دنبخصار رو این اینجور کارها بدون کار عملی خیلی جا نمیفته. حالا بعضی از دوستان خودشون کار کردن، الحمدلله اهل تحقیق بودند و خودشون بلدن. ولی بعضی از دوستان شاید این خیلی با اینا کار نکردن. من بعدم نمیاد. حالا ان تو جلسات آینده مثلا ماهی یک جلسه کارگاهیش کنیم. دوستان که لپتاپ دارن بیارن همینجا بگم فلان حدیث رو کار کنید، پردازی کنید، اعتبار سنجی کنید برام. اعتبار سنجی رجالی، فهرستی و اطمینانی. همینجا در یک ساعت یه حدیث رو انجام بدیم و انشالله عملی ببینیم چی میشه خیلی خب آقا ابراهیم ابن نسهر چشی رجال توصی داره خلاصه هلی داره رجال توسی خلاصه هلی خبری از شما بگید خبری از چی نیست کلیش رو بگو خبری از چی نیست کلیش رو خبری از کتاب های فهرس نیست پس معلوم میشه ایشون اهل فهرس نبوده یعنی چتاب نداشته اهل چتاب نبوده البته این البته شم بگید دیگه اینا رو خیلی کار کردن باشم. البته این چه ابراهیم ابن نسیر اهل چتاب نبوده اهل چتاب نهی یهودی یا مسیحی نبوده یعنی چتاب ننوشته خب این یه البته داره این یه البته اگه گفتید چیه؟ شاید کتاب داشته ولی نجاشی و توصی به دستشون نرسیده. مخصوصا چه؟ بگید مخصوصاً چش بوده دیگه چش بوده و از بغداد دور بوده زمانش هم فاصله داره. زمانش بالا قرن سه یا اوایل چهار چون چشم ما مقع دیگه. این استاد چشی بوده این ابراهیم در که توسی و نجاشی قرن پنج صد و خورده شاید صد و سال فاصله داشته اونم تو خب معلومه. حالا شما ممکنه بگید نه نجاشی و توسی همه کتاب ها رو نوشتن میگیم نه مقدمش رو نخوندی یعنی خونده بودی این نمی نمیگفتی خودش تو مقدمه گفتی که بعضی از کتاب ها یا بیشتر کتاب ها داره حالا نمیخوام وقت بیشتر کتاب ها به دست ما نرسیده اینو خودشون گفتن پس نمیشه قسم خورد این کتاب نداشته ابراهیم شاید کتاب داشته چش؟ اون دور دورا خیلی دور ما برای اینا تو مرسی سمرغند بودن دیگه البته یه قولی هست آقای صبحانی تو این کلیات رجال رو چش چشمال همین نزدیک های گرگان و اینها ولی بجره گفتن نه اونجا نیست حالا نمیدونم اینا تخصصیه این چه نمیشه گفت چون مشهوری نشه چشمال سمرقنده پس اون قول درستی نیست نمیدونم اینو نمیشه گفت این مشهور ها خیلی اعتبار نداره بین من و شما مشهور بشه که ارزشی نداره الان تو کلاس ما یه چیزی همش مشهور شد اون وقت حجت حجت نیست که شاید اشتباه مشهور شده لذا الان یه احتمالی هم هست اینجوری هم هست به هر حال از بغداد دور بوده حالا یا اون ماورالنخ باشه سمرقند خیلی دوره سمرقند تو ازبکستانه. یعنی الان با ایران همسایه هم نیست بالای ترکمنستانه اما بغداد کجا این کجا این دوری ممکنه این رو داشته باشه خیلی خب پس نشد دیگه و من گفتم اشخاص ناشناس رو بری توی رجال توسی معمولا اونجا اسم اون شخص هست من؟ چی؟ چی متوجه نشد؟ م... اولادش اینه الان اینجا پرونده ابراهیم ابن نسهر چشیه. شناسنامه در سمانیه ببین پروندهش شناسنامه در سمانیه در این مطالبی که در مورد ایشون داریم منابع هیچ کدوم فهرست توسی و فهرست نجاشی نیست و اونها هم تخصصا برای صاحبان کتاب نوشته شده پس منوم چون این نوشته؟ نداشته اونجوری کتاب نداشته ببینیم منابعش هم همینه ابن داوود هلی و رجال سه سقتون <تصفح> ابراهیم ابن اینا ابراهیم ابن نصیر این افراد رو که تو نشر مسار میاری تو این نشر مسار درایه حواستون باشه بعضن بالا پایینه <تصفح> <تصفح> یه وقتی چشیتون اشتباه روی ابراهیم دیگه میفته اونو می نویسید به اشتباه خراب بشه ابراهیم ابن نصیر کسی چشی سغتون مأمونن کسی رو روایه خوبه این خیلی خوبه داداشتم که سقه امامی بود خیلی خوبه <تصفح> بسیار خوب این از این ما بررسی رجالی کردیم اما اون کار اصلی که امروز باید انجام بدم اینه و جلسه قبل گفتم این کار رو شما اگر تونستید وقت کردید انجام بدید برای این بزرگوار یک یه تقدیم کنیم این که الان ما دوره هم نشستیم اینا رو میخونیم قدق سر این دو نفر هست این بزرگواران حضرت امام و آقای خامنهی ولی اگر این دو نفر نبودن من و شما الان باید اطراف کوه خز دنبال یه سوراخ میگشتیم اونجا با هم بتونیم یه بحثی بکنیم نکنیم یه استاد پیدا کنیم توی یه دخمه جایی از دست موشا فرار کنیم و بتونیم یک شرح لومهی با هم بخونیم اینا باید خیلی قدردان باشیم خیلی خوب من میخوام الان براتون این کار مهم رو انجام بدم کشی از زیر بطه که به عمل نیومده که این حتما در کتاب های دیگر یک خبری ازش هست اگر حدیثی بود که هیچ جا هیچ خبری ازش نبود اون یه مقدار برای یه شخص اطمینانی یه مقدار جای تعمل داره که چرا این حدیث رو هیچکی نقل نکرده حالا همین حدیث رو هم ببینیم اگر هیچ کسی نقل نکرده باشد از این جهت یه ذره ضعیف میشه متخب باز جای کار داره دیگه. ممکنه علتش رو بدونیم چرا نقل نشده. مثل حدیث سه. حدیث چهار. حدیث چند بود خدا همون که حدیث دو. حدیث دو تقریبا خیلی نقل نشده بود به اون شکل. ارف و منازل شیعتنا به قدر ما یخسنونه اون خیلی زیاد نبا ولی علتش معلوم بود دیگه لذا مشکل جان نمی کرد. ولی به حال حواظمون هست الان میخوایم ببینیم حدیث شماره چهار در چه کتابهایی نقل شده اگر نقل شده چون مضمونش هم مضمون مهمی بود سلب میکرد یادتون هست یادتون قبل خوندم براتون میگفت معالم دینت رو حق نداری از غیر شیعه بگیری لحنش هم تون بود لعنت خدا لعنت پیامبر لعنت پدران من لعنت خود من لعنت شیعیان من همشون بر اینها اینا خیانت کردن و غیر شیعه رو اینجوری برخورد میکنه لذا ما باید اینو بررسی کنیم خیلی خب حدیث شماره چهار رو من میارم در نرمافزار جامل جامع این دیگه قابلیتی رو که میخوایم تو نرم افزار درایه نیست نه باید هم باشه چون اون کارش چیز دیگه است این کارش چیز دیگه است حدیث شماره چهار رو میارم رجال تشی حالا جالبه تو نرم جامعه الاحادیس دو نسخه تشی رو آورده یکی همین نسخه که تو اون درایه داشتیم با حاشیه میدامد یکی هم نسخه آیه مستفوی رو آورده خب من نسخه مستفوی رو آوردم چون پاورقیات طولانی داره اون هم مزاحم میشه نسخه آی مستفوی بعد این, این هم ببینیم بعد رجال کشی نسخه آی مستفوی هست این حدیث چهار خب چی کار کنم؟ از کجا بفهمم این حدیث کجا نقد شده؟ از احادیث مشابه راحتی خدا رهبر عزیز رو حفظ کنه که با این حمایت هایی که چردن این در افثار ها درست شد این در افثار ها شاهکاری احادیث مشابه میزنیم در این قسمت ده تا مشابه براش پیدا کرد البته یه محقق بلده چه کار کنه مثلا این ده تا مطمئن باشید همین ده تا نیست بازم داریم یه فنایی باید به مرور که کار کردید یاد میگیرید بیتونید دوباره هی کار کنید. مثلا الان یکی از این احادیث مشابه کافی خواهد بود. شما میتونید دوباره همون حدیث کافی رو اگه حس کردید همینه. دوباره رو, رو اون راست کلیک کنید محشابه های اون هم بیارید می بینید دوباره یه احادیث جدید که همینه. ولی در چطاب های مختلف براتون اضافه میشه. خب، آقا شما باید حتماً چطابهای حدیث رو بشناسید الان بهار و لنوار اولین حدیثه این به درد ما می‌خوره؟ نه. نه دیگه چون از همونها نوشته دیگه ما منابع اصلی رو می‌خوایم. درد میشیم تفصیل وسائلشیه نه به درد ما نمیخوره بناد رو بهار اینا منبع نیست کافی؟ بقید بله. کافی منبعه کافی اصلا تقریباً همزمان با چشیه اگر در کافی این حدیث یا خامو زیادش دیگه. باشد خیلی خوبه، خیلی مؤیده. معلوم میشه کلیری هم نل کرده، چشی هم نل کرده. و خود نل کلینی بسیار اطمینان آوره. حالا ببینیم. فقط خدا کنه که این همون حدیث باشه. این قسمت مقایسه رو اگر بزنید قشنگ دو تا حدیث رو مقایسه میکنه. این قسمت کافی، این قسمت همین چه خودمون. چتاب ایلا یا قبل حسن ال اول، این میگه چتاب تو ایلا قبل حسن موسا علیه السلام. این مقدار اختلاف طبیعی دیگه. و هوافل حبس و هوافس سجنه. میبینید همون یه چیه دیگه. این ناشی از همون نقل به مضمون مزمون و اینا هم هست یا بعضا ناشی از توصیف در استنساخونس. کافی رو بیخونم. چتاب تو ایله عبیل حسن موسی علیه السلام و هو في الحبس چتابن اسالو هو عن حالهي و عن مسائل كسى این اين اسالو هو عن حالهي و عن مسائل كسى رتن کجا دیدید ؟ حدیث چهارش؟ هشتاد و اون حدیث دو وام چششی کدش ديم خيلي خو تا اينجا الان میتونید بگی این همونه یا این یه چیز دیگه است؟ این همونه همیت حدیث خودمونه به نظر میسه همون باشه حالا می خونیم رو ببینیم فهتر وصل جوابو علیه اشهرن چند ماه جواب برای من نرسید ثم عجابنی به جوابه از رات بعدش جواب رو برای من نوشتن حاذی نسخه تو نسخهش همینه ببینید پس معلوم میشه روایت کافی گویا همون نسخه نامه هست این خوبه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله العلی العظیم الذی به عظمتیه و حالا این عبارت شو دیگه کار نداریم چون فرصت نیست بریم اون قسمتی که با همین حدیث چهار مشترکه این آبی نوشته میبینین اونجا چی داشت گفت که و اما ما زکت ها. یا علی من تأخذم معال مدینه چه ها لا تأخذم معال مدینه غیر شیعه شیعتنا میبینین اینجا قرمزه یعنی تو اونجا نیست یا فرق داره الان میبینین اونجا حضرت چی فرموده از اینجا میخونم فستم سک به عربت دین ال محمدن والورث الوسقا البسي بعد الوسيه والمصالمه لهم والرضا بما قالوا ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك کسی که کس از شیعه تو نیست از او دین او را نگیر حس می‌کنید مضمون همونه دیگه از چی معالم دین رو بگیرم اینجا اینو گفت اونجا میگه لا تلتمس همینه و نهول ال... بله من لزمشی که و توحبت نه نهم به هیچ عنوان دین اونها رو دوست نداشته باش و نهول ال... خاهن ببینید این تعبیر دیگه خیلی تایید میکنه. ال این الله و رسول او و خان و و ما خان اماناتهم میدانی که اونها چه خیانتی در امانات کردن. او على كتاب الله او ببین این او اتمنو رو چون پایه حمزه رو در اینجا واو آورده در اینجا پایه حمزه رو واو نیآورده اینو نرم متوجه نشده که این دو تا کلمه یکیه قرمز آورده اینا دیگه ایرادات نرم افصالیه دیگه اتمنو الا کتاب الله فحرفو و بدلوه و دلوا على ولات الامر منهم فصرفوا عنهم فازاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وسالت عن رجلينه خب تا اینجاش بود دیگه بعضی از قسمت های چشی رو اون نداشت بعضی از قسمت های اون رو چشی نداره و اون لعنت ها رو نداره دیگه لعنت ها رو نداره به نظر میرسه این همونه یعنی تقریبا ما اطمینان پیدا میکنیم که همون روایت علی بن سوید از نامه امام کاظم هست که چشیه بخشیش آورده اون بخشیش که لازم داشته چون اول کتاب چشکی در مورد اینه که ما باید سراغ راویان شیعه بریم نه دیگران ما باید سراغ چستایی بریم که شیعن لذا این قسمتشو رو آورده با اون چیزی که با اون سندی که داشته حالا من چون این همون حدیث هست سند این رو براتون می نمیسن این کار رو انجام بدید سند کافی رو اینجا بارد فکر کنم این کار رو خیلی تا حالا ببینیم کافی <تصفيق> رو سندش رو ببینیم امام کاظم بعد چیه؟ علیه ابن سوهده. درسته؟ بعدیش کیه؟ محمد ابن منصور خب من تو همین شجره میخوام اینو وارد کنم این کار انجامه خیلی فایده داره من این کار رو ندیدم کسی انجام بده من چون خودم قبلم انصاب و قبایل عرب رو خیلی کار کردم یه جای نیاز بود به چند سالی انصاب عرب کار کردم اینجوری شجره بعد این رو تو روایت پیاده کردم تو اصنات نتیجهش خیلی خوبه الان از علی ابن سوک که ما مشترک هست به بعد دیگه مشترک نیست لیسه از اینجا جدا میکنم علی ابن تو توی قواهت کافی به چی داده روایت رو یا چتاب رو به چی داده محمد ابراین چی بود اسمش؟ محمد ابن منصور اینو اینجا بنویسید محمد ابن منصور سعی کنید هم رقیف هم بنویسید الان با همین شجره معلوم میشه که محمد ابن منصور با این علی ابن حقیب چیه؟ چیه؟ هم تبرمت رویی؟ داره بعد از محمد ابن منصور رفته به اسماعیل ابن مهران این اسماعیل ابن مهران هم با محمد ابن اسماعیل راضی همتبقه است. بعدش محمد ابن احمد نهدی محمد ابن احمد نهدی این با چیا همتبقه است؟ اینو باید, باید همدویه با این همدویه اینا همتبقه بنویسیم. ما تا دیگه چون این ادامه داره اجازه بدید اون یه ذره تو, تو هم بنویسیم که تموم بشه. بعد بود؟ محمد ابن احمد نهدی حسن ابن محمد حسن ابن با ابن... باید چه ها میشه همونجوری بدویسم که محمد ابن احمد نهدی اینم به چی داده؟ حسن ابن محمد حسن ابن محمد, حسن ابن محمد. خب ببینیم یه واف هست در اینجا این واف یعنی دو تا طریق داریم تو سند واف که یعنی دو تا طریق داریم حالا بعضی وقتا اون تو یه طبقه است بعضی وقتا کل طریق دو است. لذا از اول این سند بخونیم ببینیم چند تا طریق داریم اد. جای اصلیش ادتا فیلم ها این آدم جای اصلیش در تبلیغات میانه با این همین ادتون من اصحابنا از صلب زیاد این کلمه عدتون من اصحابنا یه وقت تضعیف نکنید تا ادتون من اصحاب یعنی مشهور یعنی نقل این حدیث مشهور در اساتید کلنی خیلی محکم میشه. اگه یه وقت چیزی گفت این ادتون رو نمیدونیم چی از تو ضعیف ها یه مقدار تقریبا ناشیگری خب. سهل بن زیاد از اسماعیل بن مهران از محمد بن منصور خوزایی ان علی ابن صوبت و و آمد یعنی تاریخ دوباره یه تاریخ دیگه. و محمد ابن یحیا از محمد ابن حسین از محمد ابن اسماعیل بن بزی ان عم هی حمزه بن بزی ان علی ابن صوبت علی ابن صوبت دیدین اینا دو اون سومیش هم چه نوشتیم پس کلینی با سه تا طریق از علی بن صهب این حدیث رو نقل میکنه ما همونجا دوباره اینا رو می‌نویسیم. حالا من چون الان شجره‌اش رو بنویسم داشام بالا توش می‌گیم یعنی چی. ببینید تاریخ دوفومش رو بنویسم. از اون واف به ق علی بن صهب چه خودش علی بن صهب صوید... تو این طریق دوم داده به حمزه بن بزی. اینه؟ نه دیگه اون اون نیست پس یه تعلیم است. علی بن سوید این حدیث رو منتقل کرده به حمزت ابن بزی. خب اولا همینجا یه لحظه دیگاه کنید اینو. حدیث نامه علی بن سوید از امام کازم رو الان با همین یه تیکه سه نفر از علی بن سوید نهار کردن این می پیدن میخواه این چیزا؟ ببین همزت ابن بزی محمد ابن منصور علی ابن حبیب. سه نفر ازشون نهل کردن خیلی خ... خیلی خوبه یعنی جزوه نامه هایی نیست که یه طریق داریم یه نفر نه این خیلی مؤثره همزت بن بعضی، به کی داره بزن از جبه نفسن تونتون این تموم بشه محمد ابن اسماعیل ابن بعضی محمد ابن اسماعیل ابن بزی. این همزه فکر کنم اموش میشه دمشنه اونجا؟ هممهی همزه حالا محمد ابن اسماعیل از اموش همزه نم کرده بعد محمد ابن اسماعیل به چی داده؟ به محمد ابن حسین درست به محمد ابن حسین محمد اونم؟ محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیاب <صفح> <تصفيق> برد دیگه کلیم. تمام طریق اون اولشم بنویسیم پس طریق سوم، طریق دوم، این هم طریق, طریق اول کله اینیم اول علی بن صوبه اون بالا به چی داده؟ محمد بن منصور خوزایی خوزایی اون چیه؟ همیشه قادر که من هاجت وزیدی دیگه اینا خب محمد بن منصور خضائی ما این همون تل سهومه دیگه محمد بن منصور اونجا خدایشو نبرد ما پس اینجا تا اینجاش مشترکه بعد از محمد بن منصور چیه اسماعیل بن مهرد اه خب اینا معید همین چه خودش میبینید بعد محمد بن منصور اسماعیل بن مهردش سحر به زیادت اها این به جای محمد ابن احمد نحدی اینجا داده به سهل بن زیاد آ آ اینم پس اینجا به این شکل اضافه کنید سهل بن زیاد الان من با همین شجره متوجه میشم که محمد ابن حسین سهل بن زیاد محمد ابن احمد نحدی هم دویه اینا همشون شون هم تبرن با همین شجره این خب این سه تا طریق تاریخ... سهل بن زیاد بعدش کی بود؟ ابده بود ابده ادتان من اصحاب انا برای کلینی سه نفر نهم کرده محمد بن یحیی اتار باید باشه دیگه بعد ابده از اصحاب و بعدش هجمه بره محمد این سه نفر برای کلینی نهم کردن خب این هم از این آیا روایت در کتاب های دیگه هم هست یا نه این هم بررسی کنیم کافی بهار بهار چی؟ محمد بن یحیل اتار درسته. چرا؟ استاد کلینی اساتید کلینی همشون خوبن خیلی خوب آقا یه لحظه ازخواه میکنم من اینو الان دهتا تموم شد چیزی دستگیرمون نشد فقط یه دونه کافی اضافه شد البته با سه تریخ من همون یعنی میخوام الان یه کلک بزنم میخوام ببینیم بیشتر هست یا نه بیایید همین حدیث کافی که الان بدرسی کردیم روش بزنید احادیث مشابه آه. الان اون حدیث رفت این ور کافی اومد همینجا اصد شد برای ما مشابه هاش چند تاست؟ بیست تا. و ببینیم تو اون تا و چیز جدید به درد بخوره ما برای ما هست یا نه بهار وافی آفیب البزا اطول ابن گاریاغده که قرن یازدهه ترک ها فهم چی بود مراد مکاتیب العمه مراد مکاتیب خدای احمدی میانجی رو رحمت کنه الخرایج و الجرائه قطب راوندی حرم کجایی حرم دفنه اون که برجسته است بله بله خدا رحمت کنه قطره این قرنه شیش خوبه ببینیم این چی ورده ان علی ابن سوید قال خرج الى ابي الحسن موسى عليه السلام سالتني عن امور كنت منها في تقيتا و من منها في ساعت صحت فلم من قزا همونه اون حدیث رو من خودها هم خودشه خود خودش پس خرايج و جرايه همین رو نقل کرده ولی سند نداره اشکال نداره ادامه میدیم بهار، مرآت، رجال کشی هشتد و پنجانو اینم سندشو بنویسیم. اینو ننوشتیم اینم سندشو وارد اونجا بکنیم ببینیم چه فرقی داره علی ابن سوهاید اونجا رو ببینید علی ابن سوهاید سایی لبربر چیه؟ جالبه این کتاب چیه؟ کشیه ها کشی هم از محمد ابن منصول خوزایی نر کرده همین رو این هم معایین اما محمد منصور کافی شد خب محمد منصور بعدش کی؟ اسمایله بمهنم بمهن. می‌بینید تایید شد خیلی اصلا درش اطمینانه اینجوری آدم خیلی لذت بیاره همیقدر مطالب به هم بند میشه در نظر اول آدم اون رو روچه رفتی کم کم میبینید طریق همدیگر رو تایید هم میکنن آدم اصلا لذت بیاره الان این برای ولی این طریق کافیه اسمایل بن مهران بعدش حسن بن موسا نداریم پس اینو اضافه می کنم آه. حسن بن موسا شما تو دفت رجی این رو منویسید اینجا قشن بنویسید دیگه مثلا این رو کافی کلینی کلینی کلینی الان این چی شد؟ این چششی شد خیلی خوب اینم از این طریق بعد از اون حسنا روزو هم که چی رو دیگه کشتی درسته؟ یا همدویه بود؟ همدویه بود حالا جالبه همدویه یه بار از این طریق نمی کرده محمد ابن اسماعیل و اینا یه بار از این یکی طریق نمی کرده اینم از این یه مورد دیگه هم به نظرم باید بگم خدمتون بعد دیگه بریم با هم دیگه اون هم کتاب بسائل. الان ببینی اینجا آه. رجال کشی مرات وسائل مرات مرات بهار قربل اسناد، قربل اسنادم هم هست این چیه؟ محمد ابن ایسا ابن عبید باید باشه از یونوس از علی ابن سوید سایی خودشه قال کتب ایلی عبول حسن الاول جالبه پس اینم یه طریق دیگر یونوس کرده از علی ابن سوید اینم به نمیسم. اینم یونوس اینم محمد ابن ایسا از اینم گربل اسمت اینم داشته باش بعد اون بسائل رو پیدا کنم براتون گربل اسمت اسمه چتابه دیگه گربل اسمت اسمه چتابه البته اصطلاح قربل اسطلاح خودش اصطلاح حدیثیه یعنی عادیسی که سند خیلی چم فاصله داره با حضرات الان ببین با سه و واسطه رسیده به خود امام کازمان رسی اونو بعد یه بار بحث کنیم با هم دیگه اما بسایر دیگه حالا اینجا محمد ابن ایسا هم تبرد کنیم محمد ابن بعد از یونوسه دیگه آره بعد از یونوسه اونو میگم بعد از کلاس بیار این آخرین منبع این که این حدیث رو بگم بعد رحمتون باشم آقا آخرین جایی که تخریج این حدیث دشون داده من پیدا کردم اینه بسایر و درجات حدیث چهار نه حدیث چنده بسایر جلدی یک صفحه پونسد خدومه خدا ها ببینید این بصائر تو همون احادیس مشابهی خود اینو روش کردم این به دست اومده فقط ببینید حدثنا محمد بن الحسین از محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل هم خیلی دیدیم اونجا محمد بن حسین از محمد ابن اسماعیل همون طریق کافیه میبینید ان حمز بن بزی میبینید قشن تاریخ کلینیه ان علیه سنانی سایی رو سنانی نوشته اما قشن یه اختلاف نسخه برای ما اینجا یعنی این الان نسخهش غلط است یا خود... صفار اشتباه کرده یا استنساخ کنندن ان اب الحسن انه كذا چتاب الله في هم جریان نامه است ولا تقل ما بلغت ان او نس و الهنا هذا باطل و ان كنت تعرف خلافه و فلان قشنگ تو مت هست من نگاه کردم پس این هم از بصائر ما تو کافی چشی دو دو تا جا و قرب اسناد قشنگ این حدیث رو داریم هر کدوم از یه جهتش آوردند این حدیث این حدیث تقریبا حالا تقریبا چیت چرد کنم اطمینانن صادر شده امام کازم علیسی نامه ای به علی ابن سوید داشته و مزمون همشون هم در یه راست هست. حالا با اختلاف الفاظش اون دیگه مهم نیست لذا از جهت اطمینانی ما حدیثی که چشتی برامون نهال کرده حالا این الفاظش نه ولی خود مزمونش اطمینان داشته باشید که امامین رو گفته اون دو نفر ضعیفن یا مرچولند پس روایت رو دور حق نداریم این همه قرینه داریم به چه دلیل میندازی بیرون امام فردا میگه چرا این حدیث رو انداختی بیرون لذا این حدیث برای ما اطمینان آور هست و ما این رو باید الله بهش عمل کنیم نسخش هم با دیدن همین موارد قشن برای ما اطمینان ایجاد میکنی که چی درسته خیلی خوب آقا حدیث شماره چهار هم تمام انشاءالله جلسه بعد حدیث پنجم رو در خدمت شما هستیم یه مروری قبل از اینکه که داشته باشیم محضر امام کازم علیه السلام بودیم تو این حدیث چهار یک حدیث به محضرشون با همدیگه تقدیم کنیم اللهم سلام آه. و آل محمد این شجره طرق رو هم داشته باشید یه حدیث با این همه طرق در کتاب های خوب و قوی و ضعیف و هر چی هست این انسان رو به اطمینان میرسونه ان شاء الله موفق و معید باشید ها اسامی شریفتونم تشبیهدید بفرمایید که نماینده